ببینم، شما فکر میکنید چه کسی شاهد بهتری برای مسیحه؟ ایمانداری که مدتها از ایمانش میگذره و به نظر میاد همیشه در حال نبرده یا ایماندار پرتراوتی که ظاهرا این نبرد رو میبره؟ در درس امروز، معلم ما بررسی یکی از امیغترین کتابهای کتاب مقدس نامه پولس به افسوسیان رو شروع میکنه. عزیزان، بیکلاسی دیگری از دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدید ما خوشحالیم از اینکه تصمیم گرفتید وقتتون رو به مطالعه کلام خدا با ما بگذرونید اگه کتاب مقدس دارید شما رو دعوت میکنم که رساله پولس رسول به افسوسیان رو باز کنید در اولین جلسه ای که کتاب افسوسیان رو مرور کردیم نگاهی داشتیم به پس زمینه و اطلاعات مقدماتی این کتاب تا دیدگاهی از نامه سمیمانی پولس به افسوسیان به دست بیاریم از این دیدگاه دلایل نوشتن این نامه را به شما گفتم دلیل این نامه نشون دادن به کلیسا هست که اونها میتونن در بعد آسمانی در مسیح زندگی کنند در جایهای آسمانی کسی که عضوی از, از کلیسای ی عیسی مسیح میتونه تمام چیزهایی رو که برای حرکت روحانی نیاز داره به دست بیاره تا بتونه اونی بشه که خدا میخواد بشه این نامی پولس شاهکار او با موضوع کلیسا هست. وقتی شما به صورت جدی شاهکار پولس در مورد کلیسا رو مطالعه می کنید، با کلیسا بازی نکنید. به کلیسا مثل یک سازمان نزدیک نشید. اجازه بدید نامه پولس به افسوسیان شما را تشویق کنه که با فیض خدا کلیسای معتبر عیسی مسیح در جهان باشید. جهان تا به امروز انقدر به شهادت کلیسا نیاز نداشته. در زمان پیش روی ما دنیا به طور بی ای به شهادت کلیسا نیاز داره. پس این خیلی مهمه که ما به نامه پولس به افسوسیان رجوع کنیم و بفهمیم که کلیسا چیه و چرا تراحی شده. همونطور که قبلا گفتم، سباب و نیم از این نامه تعلیمی و دو و نیم اون کاربردی كه که باید اون رو در زندگی به کار ببندیم. حالا میخوام یه جمبندی بدم تا کمک کنه که بهتر محتوای این کتاب العاده رو درک کنید. اولا شما رو تشویق میکنم که کمی تأمل کنید. وقتی نامه پولس به افسوسیان را مطالعه کنید بر روی چیزهایی که می‌گیم جایهای آسمانی فکر کنید. پولس به ما میگه که در جایهای آسمانی تمام برکات روحانی رو که برای زندگی در مسیح نیاز دارید، میتونید پیدا کنید. او میگه مسیح عملا در بُعد آسمانی هست و برای شما هم این امکان هست که در اونجا با او باشید پولس به ما میگه که به واسطه کلیسا حکمت گوناگون خدا به قلم روح روحانی شرید و قدرتهای بود آسمانی نشون داده میشه دقت کنید تمام چیزهای روحانی روح القدس نیستن تمام چیزهایی که در بود آسمانی وجود داره خوب نیستن بود آسمانی یعنی دنیای روحانی و دنیای غیر قابل مشاهده روح چون تمام چیزهای روحانی خوب نیستن پس روح القدس نیستن، پولوس در نامه عمیق خودش میگه که نقشه خدا برای کلیسا اینه که در بود آسمانی در مسیح زندگی کنه تا شاهدی برای تمام قدرتهای نامرئی دنیای ارواح باشه جایهای آسمانی پر از سپاه شرارت و قدرت تاریکیه در آیه دوازده باب شش پولس می نویسه زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم نبرد ما روحانی هست قصد خدا اینه که ایمانداران به مسیح در بعد آسمان شاهدی برای دنیای روحانی باشن به قول پولس ایمانداران میتونن بر این نیروهای شریر و قدرت تاریکی که در دنیای ارواح وجود دارن قلبه کنن وقتی که به آیات ابتدایی این نامه فکر میکنید به چیزی فکر کنید که پولس درباره حاکمیت خداوند میگه شش آیه اول به حاکمیت خداوند مربوطه در مورد اینکه خدا قبل از آفرینش جهان ما رو انتخاب کرده بود اظهارات محکمی وجود داره همونطور که شما وارد این تعلیم میشید دیدگاه پولس رو مشاهده کنید چیزی که او داره میگه اینه که قبل از اینکه زمان شروع بشه کلیسا در ذهن خدا بوده کلمه کلیسا یعنی منتخبین از این کلیسای منتخبین دعوت شده اونطور که مسیح زندگی میکرده زندگی کنند و زندگی روحانیشون طوری باشه تا بتونن شاهدی برای این دنیا باشند. دیدگاه پولوس اینطوره که شما و من قبل از اینکه این دنیا به وجود بیاد برای این کار برگزیده شدیم. بعد ملاحظه میکنید که پولس در بابهای ابتدایی در مورد روند نجات چی میگه؟ پولس روند نجات رو اینطور تعریف میکنه و میگه شما اینطور نجات پیدا کردید. وقتی انجیل موعظه شده شما کلام حقیقت رو شنیدید. به انجیل ایمان آوردی، به محض اینکه به انجیل ایمان آوردید، توسط روح القدس مهرموم شدید. روح القدس مثل یک تضمین بود. یا مثل یک بیانه که این نشون میده خدا قصد داره محصول خودش یا یک ایماندار رو تماما خریداری کنه. تمام اینها به خاطر پرستش جلال خدا هست. در آیات سیزده و چارده از باب یک ما تصویر بسیار زیبایی از روند نجات رو داریم. وقتی که ما انجیل رو شنیدیم به انجیل ایمان آوردیم و توسط روح القدس مهرموم شدیم. تمام اینها روشیه که خدا میگه این شخص مال منه. خدا مهر خودش مهر روح القدس رو به ما میزنه و این مقصد ما رو تضمین میکنه که همون بهشته. میخوام شما رو تشویق کنم وقتی که این نامه رو میخونید به دعاهای پولس فکر کنید. پولس در اینجا دو دعای بسیار مهم میکنه. او در نامه خودش به کولوسیان، فیلیپیان و تسالونیکیان هم دعا میکنه. اما من معتقدم که دو تا از زیباترین دعاهای او در افسوسیان هست. این دعاها رو در سباب اول میبینیم وقتی که بر دعای پولس تفکر میکنید مشخصه که او یک لیست دعا داره. پولس یک جنگنده در دعا و یک شفی بود. او برای دیگران دعا می کرد. وقتی که رسالات پولس رو می خونید، می بینید که پولس به دیم می گه من برای شما دعا می کنم. اگه اسم اون شخص رو یادداشت کنید، در نامه های پولس با لیست دعای او مواجه می اینها فقط افرادی هستند که پولس اتفاقاً در نامه های الهام گرفته خودش اونها رو ذکر میکنه. کنه. فکر می کنید پولس برای چند نفر مرتبا دعا می کرده. شما برای چند نفر مرتبا دعا میکنید این به ما کمک میکنه تا بفهمیم چطور افرادی مثل مارتین لوتر، جان وستلی و جورج ویتفیلد روزانه بین چهار تا 6 ساعت دعا میکردند وقتی اونها ساعتهایی رو در روز به دعا اختصاص میدادند برای دیگران دعا میکردند وقتی به لیست دعای پولوس نگاه میکنید ملاحظه کنید که این افراد چگونه در این لیست قرار میگیرند در لیست دعای شما یا من ما احتمالاً کسانی رو داریم که الکلیان یا کسانی که مریزن یا مشکلات دیگری دارن. لیست دعای پولس مثل لیست من و شما نیست. میدونید چه کسانی شایسته قرار گرفتن در لیست دعای پولس بودن؟ پولس در دعاهاش اینطور میگه به این سبب اکنون که از ایمان شما به ایسای خداوند و محبت شما نسبت به همه مقدسین با خبر شده از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی و شما را در دعاهایم به یاد به این صورته که کسی در لیست دعای پولس قرار میگیره وقتی پولس میشنوه کسی ایمان آورده و نشون میده که ایمان رو دریافت کرده و نشون میده که واقعا در کار عیسی مسیح در این دنیا شریک شده پولس میگه از روزی که این رو شنیدم من شما رو در بالای لیست دعای خودم گذاشتم و بی برای شما دعا میکنم این خیلی جالبه که لیست دعای خودمون رو با پولس مقایسه کنی ما برای بازنده ها دعا میکنیم پولس برای کسانی که پیروز شدند دعا میکنه پولس وقت خودش رو صرف دعا برای فاتحین میکنه کسانی که در مسیح و برای مسیح پیروز شدند در لیست دعاهای ما ما بیشتر وقتمون رو صرف کسانی میکنیم که به طور روحانی شکست خوردهاند. وقتی دعای پولس رو میخونید مشاهده میکنید که او چطور برای کسانی که در لیستش هستند دعا میکنه درخواست او چی بود معمولا وقتی ما دعا میکنیم میخویم اون افرادی که اسمشون رو در دعا گفتیم بر مریضیشون غلبه کنند یا به چیزی برسن یا هوشیاری خودشون رو به دست بیارن یا اینکه مشکلاتشون حل بشه. درخواست پولوس مثل ما نیست. پولوس دعا میکنه از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمیایستم و در دعاهایم شما را به یاد نمیآورم. من دعا میکنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام را به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید این چیزیه که پولس برای کسانی که دعا میکنه میخواد و از خدا میخواد تا اینها رو بهشون بده او دعا میکنه تا خدا به اونها روح مکاشفه کلام خدا رو بده و چشمان راهانی اونها رو نورانی کنه این باید دعا قلبی هر معلمی باشه اگر شما معلمید احتمالاً میدونید کی با اونها حرف بزنید و کی حرف نزنید چه زمانی اونها درک می کنند و چه زمانی درک نمی کنند؟ پولس وقتی که دعا میکنه و میگه و از او میخواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بحری که خدا به مقدسین خود وعده داده است پی ببرید به زیبایی این مفهوم را شرح میده وقتی که هوا کم کم تاریک میشه و شما نمیتونید چشمای مردم رو ببینید مطمئنن میدونید دونید که دیگه اونا چیزی از تعالیم شما نمی فهمن. حتی پولس با قدرت دید کمی که داشت می که افسوسیان او رو درک می کنند یا نمی کنند. درخواست درخواست اینه که افسوسیان چیزهای روحانی رو درک کنند پولس می نویسه و از او می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهرهی که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. این دعای پولس برای افسوسیانه. اگر در دعاهای پولس تفکر کنید، برکت عظیمی خواهید گرفت. در سباب اول افسوسیان ملاحظه کنید که پولس به افسوسیان چی میگه؟ چه چیزی رو به خاطر داشته باشند؟ کلمه کلیدی در سباب اول به خاطر داشته باشید هست. پولس قبلا خیلی چیزها را به افسوسیان تعلیم داده بود. و به همین خاطر بود که حالا فقط به اونها می گفت به خاطر داشته باشید. او به افسوسیان می نویسه یادتون باشه در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید. به گفته پولس و عیسی زنده بودن فقط به این نیست که فقط علایم حیاتی مثل فشار خون و امواج مغزی داشته باشید. روزی مردی پیش عیسی آمد و گفت می خواهم تو را پیروی کنم. اما اجازه بده بعد از دفن کردن پدرم بیام و تو رو پیروی کنم. من نسبت به خانواده و پدرم تعهداتی دارم. عیسی پاسخ تندی به اون مرد داد. ایسا فرمود بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند تو باید بیایی و مرا پیروی کنی. این پاسخ عیسی یکی از شدیدترین سخنان او هست. پدر تو خیلی وقت مرده. بذار اون مردگان دیگه او رو دفن کنن. به قول پولوس قبل از اینکه او به افسوس بیاد این افسوسیان به لحاظ روحانی مرده بودند. او مینیویسه و در راه های کج این جهان قدم می‌نهادید. و از حکمران قدرت هوا یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می پیروی می‌کردید. حکمران قدرت هوا تعریفی از شیطان هست و پولوس به افسوسیان میگه به خاطر داشته باشید که شما زمانی توسط او کنترل می شدید روزگاری شما بدپرس بودید و یهودیان شما را خدا نشناس و نجس میخواند در حالی که دل خودشان نیز ناپاک بود با وجود اینکه تشریفات ظاهری و مراسم مذهبی و خطنه را به جا می آوردن، اما دلشان ناپاک بود در آن زمان شما کاملا جدا از مسیح زندگی می کردید و جز قوم خدا نبودید و هیچیک از وعده های امید بخش خدا شامل حال شما نمی شود. شما گمراه و بی خدا و بی امید بودید پولس میگه بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح هست که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه ای از طرف خداست نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست از این رو هیچ کس نمی تونه به خود بباله اما اکنون که شما دور بودید به وسیله اتحاد با مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شده اید شما به مکان آسمانی برده میشید جایی که شما احساس بیگانگی دارید خدا به شما آرامش میده به قول پولس مسیح این آرامش رو روی صلیب فراهم کرد مسیح آرامش رو معذی می کرد و خود مسیح آرامش ما هست این چیزیه که پولس در اولین آیه از باب سوم افسوسیان میگه پولس میگه به این سبب است که من پولس زندانی مسیح عیسی به خاطر شما غیر یهودیان به درگاه خدا برایتان دعا میکنه. در باب سوم کلمه کلیدی الهام هست. در باب سوم پولس مکاشفه بزرگش در مورد کلیسا رو با ما در میون میذاره. پولس در باب سوم به افسوسیان میگه که الهامی که او در مورد کلیسا دریافت کرده، بزرگترین مکاشفه کتاب حال به ذهنش رسیده. به عنوان یک فریسی، پولس از مسیح متنفر بود. پولس هیچ وقت تصور نمی کرد که خدا تمام یهودیان و غیر یهودیان رو در بدن عیسی مسیح یعنی کلیسای مسیح دور هم جمع می کنه. پولوس به افسوسیان میگه گه که کلیسا راز بزرگ خدا هست. این جوهر و ماهیت باب سوم کتاب افسوسیانه. من شما رو تشویق می کنم که با دعا از روح القدس بخواهید تا به شما مکاشفه روحانی بده تا به این نامه پولس که محتوای سمیمانه ای داره فکر کنید با دعا بر برکات روحانی که در جایهای آسمانی در مسیح دارید فکر کنید و بعد از خودتون بپرسید آیا من فیض خدا را از طریق ایمان دریافت کردم؟ آیا دارایی‌های های روحانی هم رو تصاحب کردم؟ به این فکر کنید قبل از اینکه نجات پیدا کنید و هدف نجاتتون رو در مسیح پیدا کنید کجا بودید؟ چی بودید؟ بعد وقتی که به باب سوم افسوسیان وارد میشید از روح القدس بخواهید تا به شما نشون بده توسط فیض خدا الان چطور تماما تبدیل به بخش لاینفکی از کلیسای ایسای مسیح در جایهای آسمانی شده اید آن هم درست در مرکز این دنیا پر از گناه و مریض باب چهارم افسوسیان قسمت مورد علاقه منه من این بخش رو خیلی دوست دارم چون به نظر میرسه، این جواب کسی که از پولس میپرسه پولس خب که چی؟ بعد پولس با الهام روح القدس جواب این سوال رو میده. پولس قسمت کاربوردی این نامه رو که در باب چهارم از آیه 17 شروع میشه به ما معرفی میکنه. پولس از یک استعاره کاربوردی خیلی زیبا استفاده میکنه. پولس در باب چهارم حقایق زیبایی رو در مورد رفتار انسانی به ما میده. من باب چهارم رو با کلمه رفت یا حل خلاصه میکنم. پولس به شما میگه که تصور کنید که صبح از خواب بیدار شدید و میدید که لباس بپوشید یه طرف گنج لباس های زندگی شما هست و طرف دیگه لباس های نوع زندگی جدید شما پولوس میخواد به یاد داشته باشید که شما زمانی اون لباس قدیمی زندگی قبلتون رو میپوشیدید به قول پولوس شما دیگه اون لباس قدیمی رو نمی پوشید. حالا شما لباس زندگی جدیدتون رو میپوشید. به یک طرف نگاه میکنید و لباس قدیمی زندگی قبلیتون رو میبینید که بیزاری هست، نادانی، سختلی، بیوجدانی، طرز زندگی غیر اخلاقی، مکر و نیرنگ و شهوات فریبنده، جسمانی بودن، نادرستی، عدم اطمینان و خشم. به روشی که پولس به عصبانیت اشاره میکنه، دقت کنید، خشم گیرید و گناه مورزید. پولوس واقعا نمیگه که خشم گیرید. خیلی از مردم این آیه رو دوست دارن. خیلی از اونها این آیه رو آیه زندگیشون کردن. اونا میگن من حق دارم از تو عصبانی بشم. اما این چیزی نیست که پولوس میگه. پولوس اونقدر واقع بینه که میدونه شما بعضی وقتا عصبانی میشید. چیزی که او عملا میگه اینه اگر عصبانی شدید نگذارید خشمتان شما را به گناه بکشاند و یا تا غروب آفتاب باقی بماند. در ادامه این باب پولس میگه خشم یکی از لباسهای زندگی قدیمیتونه، اونو در بیاری تمام موضوع این استعاره لباس به ما میگه که باید لباس زندگی قدیممون رو در بیاریم به قول پولس، ما دیگه نیازی به پوشیدن اون لباس نداریم پولس خشم ما رو نادیده نمیگیره و به ما اجازه نمیده که عصبانی بشیم او میگه از این پس دیگر هیچ نوع بغض و غیز و خشم و داد و فریاد و دشنام و نفرت را در میان خود راه ندهید. داد و فریاد یعنی سر و صدا، این چیزها را کنار بگذارید. حتما شنیدید که میگن ظرف خالی سر و صدای زیادی راه میندازه. اگه شما یه ظرف پر از روغن رو با چککش بکوبید، فقط صدای تاپ تاپ میاد. اما اگه روغن اون رو خالی کنید و چککش بزنید، صدای خیلی بلندی تولید میکنه. در این نامه به ما فرمان داده میشه که با روح پر بشیم. وقتی که شما با روح القدس پر نشده باشید، وقتی که خالی باشید، میتونید همیشه ناله کنید، گله کنید، شکایت کنید، داد و بیداد کنید و از دیگران ایب و ایراد بگیرید. توی خونه به من میگن وقتی که من از روح القدس پر نشده باشم زیاد سر و صدا میکنم. وقتی که شما از روح القدس پر بشید، سر و صدا نمی کنید. وقتی که در این باب به ما میگه از داد و فریاد باید فرار کنین. منظورش همینه در باب چهارم پولوس به ما میگه اگر بر خورشید خشم ما غروب کنه یا اگه خشممون رو بروز ندیم خشم ما تبدیل به یک مشکل میشه ما تبدیل به شخص تلخ و توز میشیم من به عنوان یک شبان مشاور افرادی رو ملاقات کردم که به دلیل اینکه نتونستن خشم خودشون رو ابراز کنن مشکلات بزرگی براشون پیش اومده اگر خشم ابراز نشه طور دیگه خودش میده من این رو از تماسهایی که با افراد خیلی عصبانی داشتم یاد گرفتم. اگر خشم به طرق معمول خودش ابراز نشه، میتونه به روش خطایی ابراز بشه. یادم نمیره یه خانم مسیحی ریزنقش و زیبایی بود که به نظر نمیرسید از دست کسی عصبانی باشه. ولی او مشکل وحشتناک عصبانیت داشت و از من خواست که دستم رو روی کتاب مقدس بگذارم و قسم بخورم مشکلش رو به کسی دیگه ای نگم. اون موقع من خیلی جوان و بی تجربه بودم و کاری رو که او از من خواسته بود انجام دادم. بعد به من گفت مشکلش اینه که به طور خیلی جدی دوست داره که بچه سه سالش رو بکشه که دختر بچه دوست داشتنی با موهای فرفری بود. من به قسمت انتهایی ساختمان رفتم و از دوستم که یک روانشناس مسیحی بود کمک خواستم. او گفت ازش بپرس ببین او از دست چه کسی عصبانیه من گفتم اون یه زن متشخص مسیحی آرومه اون نمیتونه از کسی عصبانی باشه اما دوست من دوباره گفت ببینو از دست کی عصبانیه خب من از اون خانوم پرسیدم میشه لیست کسایی رو به من بدی که تو رو عصبانی کردن مخصوصا کسانی که نتونستی خشم خودت رو به اونها بروز بدی دفعه بعد که این خانم اومد لیستی به من داد که شامل 35 نفر بود تمام این افراد رو عصبانی کرده بودن خلاصه اینکه بعد از چندین ما با کمک های دوستم توانستم به مشاوره ای بدم تا بتونه با خشمش مقابله کنه وقتی که او از خشمش نسبت به این سی و پنج نفر آزاد شد اون حس بدی که نسبت به کشتن فرزندش داشت در او از بین رفت این مثل خالی کردن باد لاستیکیه که در حال ترکیدنه از طریق این زن بود که من یاد گرفتم نباید خشم رو سرکوب کرد او از دختر خودش عصبانی نبود ولی میخواست خشم خودش رو سر او خالی کنه پولس این مشاوره رو به ما میده در انتهای باب چهارم پولس این خبرهای خوش رو به شما میده پولس این خبر خوش رو به شما میده بعد از اینکه مثل یک شاگرد با خشمتون در مسیح و در بود آسمانی برخورد کردید میتونید خشمتون رو از خودتون دور کنید پولس در باب 4 میگه این لباسهای زندگی سابقتون رو در بیارید بعد میگه لباس های زندگی جدیدتون رو بپوشید و چیزی که میخواد بگه اینه ذهن خود را در روح تازه کنید. برای اینکه وقتی به طرف مسیح میایید کسی باشید که مسیح دوست داره ببینه باید این نو شدن ذهنتون رو تجربه کرده باشید. بعد باید مطمئن بشید که لباس پارسایی و قدوسیت رو بپوشید و اونطور که کلام میگه رفتار کنید. دزد از دزدی دست بردارد، و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند تا چیزی داشته باشد که به نیازمندان بدهد یک کلمه زشت از دهانتان خارج نشود بلکه گفتار شما به موقع خوب و سودمند باشد تا در نتیجه آن به شنوندگان فیضی برسد روح القدس خدا را نرنجانید زیرا او مهر مالکیت خدا بر شماست و زامن آمدن روزی است که در آن کاملا آزاد میشوید توانایی گفتگو یک عطیه روحانی بزرگه. هیچ حیوانی نمیتونه مثل انسان گفتگو کنه. وقتی خدا میگه ما به شباهت او خلق شدیم، این یکی از وجوه تشابه ما با خداست. پولس میگه گفتگو این فرصت رو به شما میده که با فیض به دیگران خدمت کنید. به قول پولوس وقتی شما با ایماندار دیگری صحبت میکنید، اگه با او غذا میخورید یا اگه با او قهوه میخوری یا اینکه در یک بعد از ظهر با هم بیرون رفتید، باید وقتی از اونها جدا میشید، اونها بنا شده باشند. گاهی ما برادران و خواهران روحانی خودمون رو در شرایطی ترک می کنیم که گویی اونها رو به کشتارگاه بردیم به جای اینکه اونها رو بنا کنیم، کاملاً می می‌کنی. یکی از بهترین راه های بنا کردن دیگران با گفتگوهای تشویق کننده است. بعد از اینکه پولوس به ما میگه که ما باید چه لباسی بپوشیم، به ما میگه حالا قدم بردارید این یکی از کلمات دوست داشتنیه که ما رو تشویق میکنه تا حقایق کتاب مقدس رو در زندگی خودمون اعمال کنیم زندگی در مسیح باید تجربه روزانه ما باشه و اینکه روزانه در مسیح قدم بردارید ما خیلی مستعدیم که به شروع زندگیمون در مسیح و یا تصمیم اولیه آمدن به مسیح بیش از حد تاکید کنیم ما اونقدر بر این دوره تاکید می کنیم که فکر می کنیم زندگی ایمانی ما فقط همینه ما به کلیسا میریم موعظه ای می شنویم یا کسی به بهمون بشارت انجیل رو میده و ایمان میاریم و مردم فکر می کنن ایمان ایماندار شدیم و از ایمانمون مراقبت می کنیم و بعد بر برمیگردیم و زندگی رو از همون جایی که رها کرده بودیم از سر می گیریم اما کتاب مقدس این رو تعلیم نمیده به این دلیل که وقتی رسالات رسولان وقتی وارد بخش کاربردی میشه به ما میگن که قدم بردارید. زندگی در مسیح یک قدم برداشتن روزانه هست. شما یک پاتون رو در مقابل اون یکی قرار میدید و قدم به قدم و روز به روز قدم برمیدارید این همون دلیلیه که چرا زندگی در مسیح زنده هست. وقتی که پولس وارد اون بخش از نامه خودش به افسوسیان میشه میگه با محبت قدم بردارید. به عبارت دیگه، طوری قدم بردارید که مسیح قدم برمی داشت، همونطور که او ما رو دوست داشت و خودش را به خاطر ما فدا کرد. من میخوام ترجمه دیگری از این رو هم براتون بخونم. چنان که شایسته فرزندان عزیز خداست، بکوشید که مانند او باشید، از روی محبت زندگی کنید و از محبتی که عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما داد پیروی کنید. او جان خود را مانند هدیه خوشبو تقدیم خدا نمود شما نمیتونید به عنوان بخشی از بدن مسیح بدون محبت زندگی کنید بعد پولس مینویسه خاطر جمع باشید که تمام اشخاص زناکار و بی افت و طمعکار چون طمعکاری یک نوع پرستی هست هرگز در پادشاهی مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت اجازه ندهید کسی با دلایل پوچ خود شما را بفریبد زیرا به علت این چیزهاست که غضب خدا بر افرادی که مطیع او نیستند وارد خواهد آمد. پس با چنین اشخاصی کاری نداشته باشید. شما زمانی در تاریکی بودید، اما اکنون با اتحاد خود با خداوند در نور هستید. پس مانند فرزندان نور زندگی کنید. بعد پولس به ما میگه با احتیاط قدم بردارید. خیلی از مردم فکر میکنند که پیروان مسیح که ذهنی آسمانی دارند به صورت زمینی خوب نیستند. خوب این چیزی نیست که پولوس به ما میگه که انجام بدیم وقتی پولوس می نویسه با احتیاط قدم بردارید منظورش اینه طوری قدم بردارید که اطرافتون رو ببینید با سری بالا و چشمانی باز همینطور طور پولوس ما رو تشویق میکنه و میگه همیشه از هر فرصتی که برای شما روی میآورد به بهترین نحوی استفاده کنید زیرا این ایام ایام بدی هست پولوس به ما میگه بهترین چیزی نه که از فرصت هامون استفاده کنیم نه مثل یک نادان بلکه مثل یک دانا درک کنیم که خواست خدا در مورد این جهان چیه در این نامی زیبا پولس به ما میگه که ما باید در بعد آسمانی و در مسیح زندگی کنیم خیلی از مردم میگن خب این که مثل زندگی راهبه هاست و این مثل زندگی کسانیه که وارد صومعه میشن و دنیا رو به حال خودش رها میکنه. این چیزی نیست که پولس میگه من این کار بزرگ اجتماعی رو درک می کنم و سازمان هایی که به خاطر مسیح در این دنیا وجود دارن و چون ایمانداران این چیزهایی رو که پولس در افسوسیان نوشته می دونن می که منظور از زندگی در بعد آسمانی در مسیح چیه؟ دلسوزی برای مشکلات اجتماعی به طور طبیعی در قلب انسان ها نیست. دلسوزی در قلب خدا هست. اگه شما کمی از تاریخ این سازمان ها رو بدونید متوجه میشید که این حقیقتیه که تمام سازمانهای بزرگ این کارهای اجتماعی رو انجام میدن. اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. خونه های مخصوصی وجود دارند که برای زنانی که در مشکل هستند توسط مبشرین ساخته شده مبشری بود که همیشه سفر میکرد کرد و انجیل رو بشارت میداد. یک شب که او مشغول بشارت دادن انجیل در مناطق فقیر نشین بوده دو دختر خیابونی به بشارت انجیل او واکنش نشون میدن و ایمان میارد اون مبشر به اونها میگه، حالا میخوام به شما بگم، مسیح به زنی مثل شما مدتها قبل گفته برو و دیگر گناه نکن. اونا به شبان نگاه کردند و گفتند، میشه یه سوال بپرسیم. او گفت البته، اونها گفتند کجا، ما باید کجا بریم، ما نمیخوایم گناه کنیم، ما میخوایم که یک زندگی جدید شروع کنیم، ولی باید کجا بریم؟ این مسئله باعث شد که تا این شخص شروع به ساختن خانه‌هایی برای دختران نجات یافته بکنه که میخوان زندگی به دور از گناه را شروع کنند و همینطور خانه خانه‌هایی برای مادرانی که بدون ازدواج کردن دارای فرزندی شدن این خونه ها فقط یک مثال بود تا دلسوزی پیروان مسیح رو نشون بده اگه شما نگاهی به تاریخچه این سازمان‌های اجتماعی بکنید مثل بیمارستان‌های بزرگ می‌فهمید که اونها ابتدا در نام عیسی مسیح شروع به کار کردند. دلسوزی یک چیز مهم در بعد آسمانی در مسیحه. اگه واقعا کلیسا درک کنه که معنی آخرت چیه، در این احساس که ما در مسیح در بعد آسمانی هستیم، کلیسا هیچ وقت در مواجهه با دنیا شکست نمی‌خوره. من معتقدم که کلیسای عیسی مسیح جهان رو شکست میده چون کلیسا برای جهان دیگری نیست. کلیسا زمانی در مواجهه با جهان شکست می‌خوره که نمیدونه معنی زندگی در بعد آسمانی یا در مسیح چیه. ایسای مسیح تعلیم میداد که نباید انگیزه دیگران را قضاوت کرد. بر اساس تعالیم ایسا قضاوت دیگران آخرین امتحان الهیاتی نیست. اگر شما پیرو ایسای مسیح هستید اگر قلب شما با ایسای مسیح همسو هست پس شما هم باید مانند او دلسوز باشید. شما هم باید مانند او به دیگران بگید برو و دیگر گناه نکن، چون شما در بعد آسمانی زندگی می شما در مواجه شدن با نیازهای این دنیا شکست نمیخورید به همین دلیل که پولس میگه با احتیاط قدم بردارید و خاست خدا رو درباره نیازهای دیگران درد کنید. در قسمت دیگری از نامش پولس ما رو تشویق میکنه کنه که مست شراب نشویم، چون شراب ما را به سوی کارهای زشت میکشاند بلکه به ما توصیه میکنه که از روح خدا پر بشیم ما باید در کنترل روح قدوس خدا زندگی کنیم با روح پر شدن یعنی توسط روح خدا کنترل شدن روح به ما زندگی پویایی میده تا در بود آسمانی در مسیح زندگی کنیم آیا شما این زندگی پویا رو تجربه کردید افسسیان رو به دقت بخونید و با دعا از خدا بخواهید تا به شما کمک کنه در روح گام بردارید. دوستان کسانی که کارهای زمینی رو به خوبی انجام میدن معمولا ذهنی آسمانی دارن و همونطور که معلم ما امروز گفت رفع نیاز فقرا گمشدگان و گرسنگان چیزی که در ذهن خداست. باعث خوشبختی ما بود که امروز در مطالعه کلام خدا با ما بودیم. دعاهای شما برای خدمات ما بسیار ارزشمنده حتما در برنامه بعدی در ادامه بررسی افصوصیان با ما باشید. مطمئنم خدا میخواد اونجا به ما چیزهای بیشتری رو تعلیم بده. تا برنامه دیگه از خدا میخوایم که شما را برکت بده و شما رو در دستان پر محبت خودش نگه داره.